مؤمن عزیزه مؤمن عزتمنده چرا که مؤمن میخواد ایمان به خدا داشته باشه میخواد خدایی زندگی کنه یکی از اسامی بزرگ خدای متعال و از صفات خیلی مهم اسم عزیز هست خداوند عزیزه یعنی کسی نمیتونه بهش دست بندازه و او رو پایین بکشه مؤمن هم باید عزیز باشه خودش رو نباید کم ببینه خودش رو نباید با افراد دنی هم قدم اندازه کنه همقدیه با اونها یعنی با اونها زندگی کردن با اونها اونس داشتن لذا باید با کسانی باشه که اهل آبرو هستن اون آبرو و عزتی که پود متعال نظرش هست پول نه آبرو میاره نه بی آبروی مال و زمین و گوزفند و اینها زی نیستند که انسان رو به زیر بکشن اینجا بالا ببرن اون چیزی که در واقع انسان رو بی عزت میکنه شرافت انسان رو پایین میاره چیز دیگه ایگه ببینید انسان یه بدن داره یه روح داره بدن انسان خوب نیازهای خودش رو داره وقتی بهش غذای مناسب بدید یه به مناسبی یه جهت اقلیم و اینها برقرار بشتید بدن برقراره سلامت داره شاداوه اما روح نیازهای خودش رو داره روح اگر آزاد نباشه، روح اگر دربند نباشه، این فرق کنه. روحی که دربند هست و آزاد نیست، حقیقه، از عزت بدوره. اون چیزی که باعث میشه انسان شکسته بشه، بی آبرو بشه، مربوط به روحه، مربوط به بدن نیست. خول نمیتونه اززت رو ببره یا بیاره اون حالت روحی انسان هستش که میتونه انسان رو عزیز کنه یا زلیل کنه معمولا کسایی که روح ضعیفی دارن روح شروکیدی دارن اززت ندارن هرچند قنی باشن به ظاهر مالدار باشن حشم داشته باشند رفته آمد داشته باشند روحشون اگر آزاد نباشه و وابسته باشه در واقع عزت ندادن اون شرافت که لازمه انسان الهی هست انسانی هست که خدا خلقش کرده اون رو در واقع فاقدش هستن اون که باعث میشه انسان احساس عزت یا احساس ذلت بکنه مربوط به روح میشه غربی ها مسئله دوبودی بودن انسان رو کاملا منکر هستن یعنی برای رسیدن به اهدافشون مسئله وجود روح رو اصلا انکار میکنن میگن روح وجود نداره هرچی که هست قابل حسه قابل تجربه است. روح قابل حس نیست بر همین اساس اومدن همه چیز رو وست کردن به این بدن و به زواهر و به کالود جسمی انسان میگن دارندگی عزتی ندارندگی مثلا زلتی همه رو بنده به جسم کردن بود جسمی رو ملاک میدونن اما حقیقت این هست که بالاخره ما روح داریم اون چه که ما رو به زیر میکشه و به بی ازتی میکشه انسانه حرس انسانه اون چیزی که انسان رو فاقد ازت میکنه نیازمندی مالی نیست تمه انسان رو به زیر میکشه بالاخره انسان گاهی زندگی میچرخه به سمتی که نیازمن میشه به دیگران در میونه عمه ما سیله بوده گاهی میرفتن قرض میکردن برای گذران کارهاشون داره که امیر مثلا از یهودی چیزی قرض کرد مدینه یهودی ها زندگی می کردن یهودی و همیشه پولدار بودن کشاو ارز نبودند کشاو ارز پسلی پول دارن، اصول غیر بهر پول ندارن. میرفتن از یهودی که که سانعتکر بودند و اهل رواخاری بودن و پولدار بودن در طول سال پول قرض میکردند این اززت رو از بین نمی بره بله اگر فقیری تمع داشته باشه از روی طمعش از روی حرصش بره و اظهار نیاز کنه این عزتش زیر سوال میره چرا چون روح خودش رو به اصطلاح ابسورد حال کرده با این طمعش با این حرصش اون خشم انسان هستش که میتونه انسان رو به پایین بیاره از عزت به ذلت بکشه و الا از ثبانیتی که انسان رو عزیز میکنه در هر شکل اون چرا که به ما عزت میده و یا زلت میده مربوط به روح ماست اون چه که دین با کار داره و هدف قرار داده روح ماست از طریق اعمال ظاهری و بدنی میخواد روح ما رو به عزت برسونه میگه خدا عزیز و دوست داره که بندش عزت داشته باشه، عزیز باشه تا میتونید فقر خودتون رو اظهار نکنید. مگر وقتی که استراری پیش میاد و لازم میشه خب اونجا برای رفع مشکل انسان قرض کنه. اما اینکه دستش همیشه دراز باشه، اینی که مشکل داره. اینی که نشون میده این کم همته تنبله نشون میده که تماعه نشون میده که حرس داره پیش این اون خودش رو کچیک میکنه تا یه چیزی مثلا به دست بیاره از قبل این فرد نمیدونه که چه چی چیزی رو از دست میده تا به این تماع و حرسش اگر برسه